ruyu sajde Allahu billahi ash-shaytanu wajid نام الله که بخشینده و با رحمت است <متصفيق> فلام می نازل شدن این کتاب که در آن تردیدی نیست از جانب پروردگار جهانیان جانیان است آیا میگویند؟ دروغی است که پیامبر بافته است نه قرآن حق است و از جانب پروردگارت آمده تا مردمی را که قبل از تو هیچ هشدار نداشته اند نسبت به دستاوردشان هشدار دهی شاید به راه نجات هدایت شود الله کسیست است که آسمان و زمین و آنچه میان آن هاست را در شش روز خلق کرد سپس به عرش پرداخت. بدانید که به غیر از او هیچ تکیه گاه و هیچ شفی ندارید آیا هنوز هم پند نمی از آسمان ها تا زمین را تدبیر می سپس در روزی که به مقدار هزار سال شماست به سوی او عروچ می کند. او دانای نهان و آشکار است او قدرتمند با رحمت است کسی است که هر چیزی را به بهترین وجه ممکن خلق کرد و آفرینش انسان را از گل آغاز نمود سپس بقای نسل او را در اصاره آبی بی مقدار قرار داد بعد قامت او را موزون کرد و از روی خود در او دمید و برای شما گوش و چشم و دل آفرید شکر گذاریتان چندک است. و گفتند آیا هنگامی که در خاک ناپدید شویم دوباره آفرینشی جدید خواهیم یافت؟ نه آنها به دیدار پروردگارشان کافرند بگو فرشته مرگ که بر شما معمور شده است شما را می و سرانجام به سوی پروردگارتان بازگردانده می ولو ترائید المجرمون عند ربهم رب. صالحا. انا اگر مجرمان را ببینی که سرفکنده نزد پروردگارشان هستند و میگویند پروردگارا ما حقایق را دیدیم و شنیدیم اکنون ما را بازگردان تا عمل کرد خوب و شایسته داشته باشیم ما به یقین همه چیز را دریافتیم اگر سلام می‌دانستیم هدایت هر کسی را می کردیم. اما وعده من که گفتم جهنم را از همه جنیان و مردم پر می‌کنم حق است به خاطر فراموش کردن دیدار چنین روزی بچشید عذاب الهی را امروز ما نیز شما را فراموش می به خاطر عمل کردتان بچشید عذاب جاودان را. فقط کسانی به آیات ما ایمان دارند که وقتی به آن یادآور میشوند، به سجده می و به حکم ستایش پروردگارشان را تسبیح میگویند، و تکبر نمی برزند. تتجافی جنوبهم عن المقاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون آنها در دل شب از بسترهای خواب برمیخیزند و از خوف قهر الهی و تمع به رحمتش پروردگارشان را میخوانند ربنا ربنا ربنا همواره از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز بهره مند می‌سازند هیچ کس نمی داند برای آنها چه پاداش مهمی که مایه‌ی روشنی چشمه است نهفته شده به واقع این پاداش عمل است آیا کسی که به حقیقت ایمان دارد، همانند انسان زشکردار است، هرگز مساوی نیستند. اما کسانی که ایمان آورده و عمل کردی نیک و پسندیده دارند، به پاس عمل جایگاهی در بهشت خواهند داشت. اما کسانی که اعمال زشت و پلید مرتکب شدند، جایگاهشان آتش است هرگاه بخواهند از آن خارج شوند دوباره به با آن می میشوند و به آنها گفته می شود بچشید عذاب آتشی را که روزی انکارشون کردید قبل از عذاب بزرگتر عذاب دنیوی را به آنها می میچشانیم شاید از انحراف بازگردند چه کسی ظالمتر از کسی است که به آیات پروردگارش متذکر شد، آنگاه از آن روی بگرداند. بدانید، ما از مجرمان انتقام میگیریم. ما به موسی کتاب عطا کردیم. پس در مورد دیدارش در تردید مباش و او را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. از میان آنها پیشوایانی برگزیدیم که به فرمان ما مردم را هدایت میکردند و این، به پاس شکیباهی به یقینی بود که به آیات ما داشتند قطعا پروردگار تو در روز قیامت میان آنها در آن که مورد اختلافشان بوده قضاوت خواهد کرد آیا نه زیادی را که پیش از این هلاک کردیم و اکنون اینان در خانه راه میروند مایه هدایتشان نشده است؟ در این نکته عبرت است. چرا گوش شنوا ندارد؟ آیا نمی بینن که ما آب را به سوی زمین های خشک و بایر جاری می کنیم تا از آن کشتی برویانیم که آنها و چهار پاگانشان از آن بخورند؟ چرا این حقایق را نمی بینن؟ و می اگر راست می چه وقت پیروزی الهی فرا می رسد؟ بگو در روز پیروزی ایمان آوردن کافران سمری نخواهد داشت زیرا به آنها مولت داده نمیشود. از آنها روی بگردان و منتظر باش آنها نیز منتظرند فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون صدق الله العلی العظيم